من از همه بدم یه صدای تو کردم میگه بزن تو سریشت یه درد دردی تو شکمم شروع, شروع بزن بزن بزن بزن بزن شد بشه زیرا درمسی سینه من آدم زعیفیم بسله یه این شلو بازه این درمیم تستان گز گز میکنه خوشم بود یک سالم و این سال منتظرم قرار رو تیجه ساله که شدم حکم اجرا بشه ولی وکیلم میگه میشه با پول از خانم طرف رو Yeah. شب یلده نزدیک دریا بودم برای خودم خیال میکردم که خیلی موقعیت طلایی پیش آمده که یلدا را بروم لب دریا و برای خودم قدم بزنم و همین خاطر همه را به هر بهانه‌ای که بود قال گذاشتم و ساعت‌های 10 11 شب خودم را به دریا رساندم خیلی شلوغ بود همه فکر من را کرده بودند ولی یک جای دور افتاده پیدا کردم و تنها شدم موجها برای خودشان کشکش میکردند و به ساحل میرسیدند. و از حال می رفتند و دوباره به دریا بر می گشتند نور زرد شراغ آن دور بر افتاده بود توی آب و همراه با موجها بالا و پایین می آمد قبل ترها خیلی دلم میخواست در یک شب خاص با کسی که دوستش میداشتم لب دریا قدم بزنم. در یک شب خاص مثل یلده و در آن هایی که شانه به شانش برمیداشتم. همان یکی دو دقیقه ای را هم که شب بلندتر بود را به روخ دریا میکشیدم که شب از اینکه که طولانی تر و تاریک تر نمیشود. ببین من در بلند ترین شب عمر یک سال باز هم مغرور و خوشبخت اینجایم. مدت خیلی زیادی رو دریا ایستاده بودم و به همین چیزها فکر می کردم. به اینکه اگر من و آن دختر روی این شنها قدم میزدیم و میرفتیم چند دقیقه بعد موجها هیچ اثری از رد پای ما دو نفر به بهجان میگذاشتند و من دقیقا همین را از زندگیم میخواستم، بروم و هیچ رد پای از من به جا نماند. دلم میخواست یک سیگار را دو نفر بکشیم. نیمه اول سیگار را او بکشد و نیمه آخرش را من بکشم. در حالی که روجلاب روی فیلتر سیگار و لب‌هایم مالیده بشود. افسوس، هیچگاه آن یلدا از راه نرسید. همان چند سالی را هم که یلداها را با هم جشن می‌گرفتیم، شب آنقدر طولانی می‌شد که ما از ترس جدایی بیخواب می می‌شدیم. همه این فکرها از سرم گذشت و بعد خودم را دیدم که رو به دریا ایستادم دستهایم را در پارتای توسی رنگم فرو کردم باد موهایم را به هم ریخته و شوربختانه هیچ کس نیست. او آن شب در شب یلده شاید کنار شومینه چیزی روی زمین سرش روی پاهای مردی گذاشته که هرگز مثل من دوستش نداشت اما جایش گرم است کسی رد پایش را پاک نمی کند و شب هرچقدر هم که کش بیاید ترس جدایی از آن مرد را ندارد من فکر می کردم که ساحل جای آشغ ها و محشوع و فکر می کردم که لب دریا بهترین جای سلاخی کردن شب های بلند است اشتباه می کردم یلدا و دریا هم دستند چون هیچ کدامشان انتها ندارند و این بی ستون فقرات هر مرد آرزو به را خورد میکند و میریزد روی ساحل و چند دقیقه بعد موجها کشکشکنان کش کنان را بر می و میبرند و هیچ اثری از کسی نمیگذارند یلدا قلب را میبرد و دریا استخوانها را و همه چیز تمام میشود Thank you. این بود بخش دوم از ویژه برنامه یلدای 94 رادیو یلدا می آید و تمام می شود. ما می مانیم و تمامه به فنا رفتن‌های زندگی روزمره گاهی غیر معمولیمان. تا یاد بگیریم که در واقع زندگی همین به فنا رفتن هاست و یاد بگیریم لابلای این به فنا رفتن جایی، فرصتی، زمانی باز کنیم برای تجربه های خوشایند. تا یاد بگیریم که وقتی تمام مدت در حال نگاه به پشت سر باشیم این زندگی و به پنارفتنهایش است که ما را پشت سر میگذارد. در بازی شطرنج در حرکت اول 20 حرکت مجاز خواهیم داشت. در حرکت دوم بیش از هفتاد و دو هزار و شروع در حرکت سوم به عددی نزدیک به 9 میلیون می بسیم. این یعنی کوچک حرکت و تصمیم ما در زندگی می تواند منجر به یک شکست بزرگ شود. دیر یا زود. اما فراموش نکنین معنای دیگر این موضوع این است که هزاران یا شاید هم میلیون ها را برای جبران حرکت قبلی ما وجود دارد یلدا این شب بی بدی می آید و دیر یا زود خواه نخواه مست یا حوشیار تمام می شد تمام منو کن توی این بست منو باور کن توی کشف این لحظه سکوت آینه هامون که اتفاقی نیست نه دروغ از تو بریدن یه حقیقت مهزه